چی جناب سر اتفاقی افتاده توکل به حرف بزن تو کوویت مرافعه به پا کرده برگشت برده برگرده خونش پای خودشه نامو سینب فقط مرتزامو میخواستم علیم شلوغ کرد ریختن سرم هنگ بستن دنبال ناموس مردم بودم نبودم فقط مرتزامو میخواستم چه شده؟ دوستن کن بدمت بیگم چه شده مینگم؟ چونه مادنه دوستن کن برو من این چه برو یلا خب هر بزنی بچه رو بردید از روی پاسش بعدش دیگه من نمیدان چه اتفاق افتاد. بعدش چی شد تو پاسش هنیف با تو هم میدم حرف بزن هنیف هنیف الو چاوش زنگ بزن این ده تا پیغام شد دارم میمیرم زنگ بزن منتظر اسم. علا شا باش زنگ دهن زهر تمومه؟ تو <تصفيق> خودمون گسته بخوریم اونا برنده شدن؟ بهتره همه بفهمن اونا برنده؟ نگرانه آرازم نگرانه تو هم گلوم همون عزیز که هم؟ بیشتر ندارم فدای ستاتون چووش اون قضیه آقا که فرمونو کچ کرد که برستم تای دره فقط خودم و خودت خودت و خودم ¿Todos? ¿Todos? با غلط نگه هم دار جای خوبیه نگه هم دار لکه دماغم سزوندم تو قلبم برم نمونه قلبم نگه داشت همیشه بابت زبونت فندم محکوم بودم حق با من بوده ولی چون زبونم به ناسزا گیر میکنه محکومم چون دستم به زدن بلند میشه محکومم ولی امشب نمیخوام بزنم نه نباید بگم درد و قرار با هم کرکره ها رو بدیم بالا دخل و با هم بشماریم مشتری رو با هم راه بندازیم این ور کنیم من ور کنیم کار کنیم ولی چابش هرچی در اومد نصب نصب نیست نیست چون تو بهم بدهکاری اون چکی که دادی دستم و آقام یه جوری نگام کرد که ای بی بیوفایی خوائن تا اون روزی که تو میدون افتادی جلو و من افتادم پشت که همه فکر کنن نوچتم آدمتم غرورم رو عبلنبو کردی غرورت رو عبلنبو میکن اسفل Ta gurur et o ben bedaikari. O samimin teakli nesil زمت داشتم قدیمان وقتی دشتشه پوشتم احنا فقط مرز زمان بخم احنا فقط مرز زمان بخم مرز زمان بعد گفتن افتی داشتهش رو گفتم خودم بیا فررتش. Hedigiaidama agam قرار نه سرجا میرم با هم باشی یا حرفی نزنی قرار نیست بچم. از مرتزا خل شدی دیگه اگه نشده بودی که زنان و مردونه رو قاطع نمی کردی. این دیوانوازی بازیات چه مرد نبوی که Kõik kõik kõik kõik, حمله صدام به کووید. یه تو سینه بچه‌م. کم کم رسید به قلبش. شوهرم که مرده بود. بچه‌م مرتضی که رفت. دیگه چایی نداشتم برایمون. دلیلی نداشتم برایم. کار میخواستم برای این مرگ اولاد راهی شدم وطن پیداد کردم میگم سر برای شدی؟ نه حرب شدی؟ نه چاهم نه دعوام نه بزن مهادوری؟ من دیر برگشتم. ترقش صدام بچه‌مو نگشت. دیر برگشتن باباش از مرافو و چاقو بچه‌مو کشت. تقصیر گردن نیست. خواهرام تقصیر گردن. وقتی اومدی که شوهر داشتم. نمیتونستم نلش کنم من ایش کرده به نجابت چک میکنم من فقط بچه میخواستم من نمیخواستم غربت شو حرکت زبون زبونیشو نمیفهمیدم تنهایی بی مرتزا بی مرتزا بی مرتزا. خودتو قسارت نکن مهربون نشو گله ندارم از این گچه رو جل رفتی گله دارم اگه با هم مهربون باشی بچه همو دور انداختن چون دور انداختن بریدی از یه جا بریدی و گذاشتی رفتی با مادرت با خوهرت با دومادتون. همه این سوالها دردم این بود قمم این بود حرفم این بود چرا بی خبر رفتیم چرا بی خبر چرا نزاشتی التماسیت کن چرا حتی از گذاشتم یه اکس از بچم برای پریخ چندی الان وقتی مهربونی نیست قریبه وقتی مهربونی نیست بچم سیره خاکه وقتا برگشتنه دیستو نبود تنهای دستمو گرفتی با این برگشتنت آمیدمو گرفتی چشم انتظاریمو گرفتی حالا حالا چشم انتظار چی باشم چشم انتظاری کی چشم انتظاری زنوه دایی خیر که نیست پس کشم انتظاری به سر رسی خبر شوق هست با سنوی جاو مکم نام اخرم و غریبه الان تو اتاق <تصفيق> شبیهشی؟ شی طلعت هم صحبت مادرم بودی آورشو داد به تو دلم مادر هم صحبت مادرم تنگ شد لگ زده و لطم صحبتش بود ماجرای Connor? می جو بم. من یه جو خواب پیدا می‌کنم. مرحبا نیکوم باشی. من نمی‌تونم. نادرام رسو میده. مشاعر و حرفه چوسوید. مرحبا نیکوم باش. داکتور. شبام داکترین دای جون. خطا کردم حقو حق, حق داکتر رسوندم. اگه خطاست که ایچی بله که خطا نیست صابحق چرا داره پشتک میزنه رفتم به ایندون گفتن رفتی باید زن رفتی گفتم دایی بگو با تانک رفته بابر میکنم ولی زن چه پشتکی؟ با تو هم ستار اون خواهد شهر را بندازه آبه ریزی را به اندازه داداردودور کنه به جون دایی منی که راز داشم و فاش کردم افتادم جلو واسه این حق اگه قرور داشم آبه روی داشم گوشش سایده شه به جون دایی بد می به جونشون <تصفح> <تصفح> گوش کرد یاب جی؟ بی خود کردن کریم بوستان گل سل داده کریم یه بر ماجره ستار بر دیگرش اه پولیس خوبت رو انداختن این ماجره بزرگتر میخواد. این ماجره شما رو میخواد بزرگتری تو میخواد شما نیای وسط جوونی من میاد وسط اون وقت دیگه از اقمق هیچی هیچ خبری نیست من نمیزارم حرمت دعاشم از بین بره اه من سواب کردم نگو خود کباب بوی کباب تو راهه. با منی داری حواست با منه پیش من حواست هربعین کردم او تو هربعین؟ очку Qualseствен, sivutned... از رسم رسومات چی میشه به سرداییمون فوت شده حجره که انو بازه میگو هر روز فروش نره گنده پدا سرم که میگنده میخوام 24 و ساعت حجرمون بسته باشه کردی دیگه دین زود نداره بالاخره باز شروع کردن طب تون زود درفش در میاد منو که در نایمنده این درها با کلیت بازو بسته میشن یا با ریموت میخوام ببندنش 24 ساعت به اصرام پسردائیمون ام؟ رو سرسوختم بزنم بچه رو زدم بخورم از بچه خوردم سرسوم هم داره سرسوم شو به جانه میادم زبون هم که آبروتو میبره تو میدون میخوای جانمون یه می با نگندی بیرون میخوام تحتیلش کن ولی تو از این تبایی هستی که عرقت زودتر درمیاد چون نوکیزه ای جاوش یه انار زیر پته برکت خدا از لحش نکنی ورش دار از دو مجره چیه؟ مجره اینه که من تو زهن تو چقدر آدم عوضی هستم و نمیدونم ولی میدونم که تو تو ذهن من خیلی عوضی هستی چرا؟ برای اینکه تو همه این سالا زن و بچه من نخوردن نپوشیدن لیلا نخورد نپوشید مادرم نخورد نپوشید پدرم نخورد نپوشید و دنده صدمن یه غاز چاخ کرد ذهنش خاطراتش رو مروف کرد که ای بابا ای روزگار چه دورانی داشتم از خودم بفور نعمت نبود بلی دورا این از خودم ولی یه چیزی رو میدونیم همین آقا کریم بوستان که پول خود جور میکنه تا باقی کرای مردم رو بده تو همه این روزای سخت محترم مند ولی تو چی این؟ آجور رو آجور گذاشتی نوچه پر براندی که محترم بمونی مافیای میدون رو دستت گرفتی که که موز بفروشه که خورمالو که چند بفروشه کی چند نفروشه همه هم به حرفت گوش کردم بازم نکنم ولی احترام نه چیزی که بابای من داره تو نداری داری جزش رو میزنی کار داریم با هم قرار رو حال کنیم نه نه من با نوکی ساها حال نمی کنم مخصوصا اونه که منو گخشوشون باباشون بار می ب بچه, بچه رو برد دستشوی منم رفتم بیرون دستشوی منتظر واایستااددم یکی اومد گفت خانم دستشوی آقایون گوش نکردم. یکی دیگه هم گفت بازم گوش نکردم. انقدر منتظر ایستادم تو از دستشوی با بچه اومد بیرون. نگام کرد ترسیده بود جا خورده بود قیافش یه جوری شده بود انگار رفته زیر ماشین، انگار کتک خورده بود. شد لبوش شد یو عین گچ لبباش میخواست بازشه حرف بزنه باز نمی آخرش هم حرفم بچه به بغل فرارد کرد بود تو با رفت منم ها جوواژ نشستم کف پاساش هم شد بهچی؟ اصلا کیا داری میگی؟ یه پدر که بچهشو میبره دست شوی بچهی که از عهده خودش بر نمیاد یه پدر این کارو میکنه دیگه نه؟ نمیری تو خیابون تابلو بزنه شغل من که بچه مردم رو سرپا بگیره. درسته؟ راست بگو ببینم فهمیدی حرفامو یا نه؟ یا مثل پریشب؟ آلا نمیخواد پریشب با چون موقع کنی عمر بکویی تو سر ما کی حرف اصلا ناجبه کیه پس حنیف پدرشه. پس حنیف بچه داره بعد اومده خواستگاری خواهر من. اومده سراغ خانواده مظلوم و آروم من. درسته؟ چی میگی؟ حنیف دانش به شیر میده. بچه‌ کجا بود؟ تو بغلش. بعدم باهاش فرار کرد. خاله‌ام جواب تلفن منو نمیده. از ترس و اینکه نمیدونه چه دروغی به هم ببافه. استاش نشی دروغ بهش یاد بدی همون استایی میوه فروشیش بهمون کافیه شما را شو بگیر استاش جاو تلفن منو نمیده شما را شو بگیر لطفا خونه داداشمه خونه داداشمه یه حسی داره بهم به میگه دروغ حرف میزنی حنیف اصاب خفم کرده قد تو زندگیم بوده راست رفتم گفتن آراز راست. چهر رفتم گفتن آراز تراخش میدی مثل آقه خوردم سدش سدش از پشت سدش دیدم که زدیش دلوم. دیدم که زدیش دیدم دستتو باید بگیری بالا بذاری تو قرآن قسم بخوری که راستشون همه فن عریفی که عریف دلش نیست تنها میمانم میدانم میانم با تو آرامم بی ترس از تنهایی تنها میمانم عاشق تر زخمی تر آرام چون آتش در زیره hookustu geri gel o biya dil tang dida buğzun şebetim men her çudarem Oşofle as مو kas bem Az مو